جابر هم از رسائل بسم الله الرحمن الرحیم بحث تقسیم قدر قدر کریهی و, و مفتونی مطالب خیلی زیادی هست که مطلب به این بحث و بین بعضی از این مواهر سایت خاطرین در حواشی و شروع و بوله رسای مردم نشده یا حتی در خود رسای مردم نشده استقراب میشه و یار مکنممرتبط ارتباط به این بحث نا نداره بنکه خیلیم مرتبطه و یکی از مباحث خیلی مهمش همین تقسیم شروط رفیه و علمیه به دو قسم و نحوه تشخیصش ویکی از چه راههایی ما این شرطها رو تشخیص بدیم و ارتباط مستقیم به قصد موضود داره این هم با مباسط در طرف بشه برای کسی نمونه. دو بایی نمونه سال دو دوست دسته سوری دور کنده برای احلی نداره حالا اون مقداره که از مدخوندیم برای اینکه صورت اجمالی ازش پارش شده باشیم یک سفر از من بکنم به سالهای بنابرای موضوعی سفرکی داره می زنیم و دلیل و داره علا ثبوتی بشهیم به شرط حسود و در سبب خاص و شخص انخواست و از جزمه باید نگه در از نگاه می کنیم. دلیل و انخواست دلالت کنه برای این حسود برای موضوع ثابته به شرط حسود علم این و تعالی سبب این خواست. یعنی به از که تا بسانت باشه او از این خواست شرس نباشه یا قد تا نباشه به امثال این ها. مثل و مازه همه به بعض افتاریین مثل مطلبی بعضی از افتاریین داره مثل و از ترابادی که مطالب این ها رو خیلی استیحاش می کنن. خیلی میگنم این استرابادی هرپا چیه زده محددیس جزائری هرپا چی این دارم میزنن شیخ انسانی هم مطالب خیلی خیلی مهم اینها رو در وسایل آورده ولی به نظر میگه اونطور که میخواسته رفتش کنه نتونسترد بنابراین صبحات ها اینهای نقای کردن خیلی مفید استرابادی و جزائری و اگر یکی دیگه دیگری باز بشه برای به این دوتا از کلمات راه ها و آخاق زیادی باز میشه برای اینکه ما این ادله عقلیه رو به این نه می کنم برسیم رو رزنیم و همچین رسول عملیه رو یعنی هیچه یه تخیمان شده هیچه رسول عملی هفتاد درصدش استحاب و براعت هر قسمی با این هم و این گابندی بنده پخنون است و از ترابادی و تابعینش به این اینه ای که ما بری از نه، و به قوائدی که منسجم با مبانی امامی است. ازا خیلی ای حرفای این ها سیهاش نداره در بدی نگفت در مون نامی مونه این این چطوری تبریل بشه خوب الاده مطالب و خوبی داره اینا نکونیم و بزن ازان میکنیم قرار دارو اخواییان منتها حرفاشون بد نیست ما بیان بگیم نغوا نمیشه، فقط همین چیزی که شیطان ساری داره میگه و دیگر اون چیزی دارم بگن و امین از طلباتی خیلی جا که حرفای خیلی بدون درود در قرآن یاد طلباتی زدم ایشون از حضرت بیرونو مشوات بی بوده و به خاطر از نذرت در مکه یا الفواید و الفواید در زمان نمیشه واقعی اینطوری نیست این برخلاف واقعیت واقعیت اینه که آدمای کیری بودن تشخیص دادن که فکر ما داره قر میشوزه دورانیه یعنی الان که ما هر مسئله رو مطرح کنیم شاف استثنا وجود نداره دوم هم خدا هیچوقت نمیدونهอะไร حدش ناحییش هم نمیکونه این هم استصاب از کجا بده یعنی فکر ما اصلا مکتب ما مقتنی شده برای استثنا لا تنوز استثابه هزم آمه وزوم صحیح یا صحیح نیست صحیح نیست به خاتیم این قبل از اینکه به دنیا بیای صحیح نبودی صحیح. من بدهکار به, به زید هستم یا نیستم قبل از خلقه تا آدم شما بدهکار نبودی الانم نیست یا پار سال بدهکار نبودی ده سال قبل بدهکار نبودی اینها نمیتونیم قبول کنیم هر گفتن که آسینه از حرف بدی نزده ولی حالا خیلی کردن کردم و محلی از اعراب برای این اخباری نداشت با اینکه میشه تعدیل کرد من اخباریگری به این نحوی که از میگه قبول ندارم ولی میشه تعدیل کرد بین این و سرابادی میشه جمع کرد از سرابادی حرفای خیلی خیلی مفیدی زده واقعا حرفاش خوخت مخیر منطقه در اون جهتی که میخواسته بگه برای جهات دیگه حالا این ها در موضوع خودش می کنیم مطلبه اینشون رو می کنیم مثل ما زهبه دهی برگول من منحرم جواز عمل به علم غیر حاصل من از کتاب و سنن. این که از کتاب حاصل حاصل نشون به در در شرعیات از بدی ما هم میگیم حق نداره در شرعیات به عقل هم و یک تعریفی از عقل آقایین بنویسن عقل دو جور تفسیر میشه شاید یکی از این تفسیرها رو شما شنیدید تفسیر دوم رو نشنیدید اگر شنیدید می نگفتن اعتباد بهش پیدا نگردید یک دلیل یک تعریف برای دلیل عقلی همون تعریفی که فلاسفه داره ادراک واقعش دلیل عقلی یعنی دلیلی که ملازمات عقلیه استجامات عقلیه اون مباحثی که در رسول فقر براش اومده در حکمت صدرایی براش نوشتن دلیل عقلی رو اینا میگن دلیل عقلی عدنده که حاکم در اونها عقل باشه عقل خدوم عقل همون عقلی که مدرک کلیدیاته و عقل صدرائی این همین دلیل عقل این راه داره یا راه نداره خوب و من اختلافه بین نافین و اختلاف داره. یه تفسیر دومی داره عدده و اون مدد نظر ها و حسیبی نه عقل حکمت و خلصت باز این کاری به عقل اونها نداریم اونها کاری به عقل ما نداریم ما عقل اصولیمون این تفسیرش. دلیل عقلی یعنی هر دلیل جزمی دلیل مستند به کتاب سنت هر دلیلی که جزماور باشه مستند به کتاب سنتا نباشه بهش میگن دلیل عقلی پریدن کلاب باشه ریاضیات باشه حساب باشه همین ها رو میگیره. هر دلیل جزمی هر حکم جزمی که غیر مستند کتاب و بسندت باشه این یکم دلیل عقلی و اصولیه این رو دارم میگن آیا میشه در شرعیات به اقلیات استناد کرد؟ عبدا نمیشه نه عقل به تفسیر اول نه عقل به تفسیر دو چون شرعیات رو داره میگه شرعیات در مکتب از ترابادی یعنی همون مولویات و یعنی احکامه شرعیه سعبدیه محضر رو داره میگه نمیشه استناد کرد به خیلی کتاب سنگه نه بردیدی تا به تحصیلش میاده شده که و نقل کلام از و رد کشه خمساری بسیم خواهد رد ولی خوب مطالب رو از اون به زنگاه های از آورده از فقاید مدنیه بعد خوب رد نکرده با اون خیلی خوب در قطع حرف از ترابادی بر هر شیخ انساری می سکنی شده. و مازه حوالیه و همچنین می گه رو دلیل راه دلیل و بود، و بود این به شکل به شرط و یعنی همین کتاب سنید مثل مازه حوالیه بعض و بخواست. او شخص خواست. شخص خواست حسن قاضی بازی های میتونه به علمش بکنی یا نمیتونه عمل کنی ابن ادریس حلی میگه قائل به تفسیل من منمنع عمل بازی به علمی حقوق الله کار اثبت به حقوق الله به علمش نمیتونه از پس شخص خاصی باید علم داشته باشه و بازی دو اون شخص خاصی در حقوق الله نمیشه به علمشن عمل بکنه باید در بینه حقوق الله یعنی در حقوق میشه علم خودش میتونه قد بکنه که این شخص از این زید قرز گرفت و هنوز نداده ولی آیا این شخص شرب به کرده گرده زنا گرده علم داشته باشه که علم خودش میتونه بکنه و امثالتو داله یعنی قصد موضوعی باشه و از سبب یا شخص خاصی مرد به نظر باشه و چیت باشه امسید <تصفح> داره که نسبت ایلا حکم غیر قاطع نسبت قاطع که همه یعنی قاطع را خودش عمل بکنه این مثالاش خیلی کمه و نادره خیلی هم اتفاق نید ولی بیان بگن غیر قاطع به این قطع شما عمل بکنه اون مثال های زیاره مثل این یه حکم شارعه المقلل مقلل به وجوعش به قیر یعنی همون مرجعه به حکم شرعی ازا علمه بهی این شخص مشته وقتی این بیدا کنه به بید این حکم شرعی من از پروگل اجتهادیت میگن مراجع میتونه مراجعه کنه به این تعلیق از نظر اینکه علم کافی از سبب خاصیات شده باشه یعنی از طرق معهوده باشه تو حوزه ها باشه نه اینکه یه 50 سالی نبوده بگن این عارف رو برگرده بیاز به خاطر ما بش مراجعه کنه باید طرق معهوده رو پی کنه از در فقهای که در درس و تدریس و مباحثه همین احکام باید باشه بیا بگید من علم لدتونی به این دارم نمیشتم. طرقش باید معبوده باشه از نظر اصول، فقه، موانی، رجایی و همه این موانی و علومی که برای اشتحاد در حد مطلقش قائلن همین ها رو باید تحصیل کرده باشه و ایلا نمیشه اگر یک مستحیدی از علم رمل و جفت و استولاب و امثال اینها استفاده کنه به احکام برسه برای خودش رو چیت داره. ولی دیگران نمیتونن از این کنند. چون طرقش معبوده لا من مثل رم ول جفت علم نقاط با نقطه نقطه چیدی؟ جفت علم حروف، دعانی حروف هرشناسی. شناسی هر حرفیه دلی درش هست ولی ما نمیدونیم ولی در علم جفت علم غروفه این شخص مثلا اسمش حسنه متشکل از این ستا حرفه و این خاصیت این هرچی حرفیه این شرف نگیشتی میشه آخرشتی میشه که کاره میشه تمام اینا تأثیر داره. و اون خواهد میگن برای بچه اسم خوب بذارید نه اسمای قربی و پایی این. یا هر اسمی رو در این فیلم های ببینیم بیانیم برای بچه ها بذاریم یا تاثیر داره اون در علم جفت و در علم و ثابت شده است و این نلقت الهاس المنهازهی یعنی قطع حاصل از رمل و جرف رمسالین ها و این وجبه عل القاطئ بهی الاخذ بهی بی عمل نفسی خودش میتونه عمل بکنه با علم جرف به اینکه که و نداره میتونه عمل بکنه با علم رم دستی به اینکه این دلیل و کیت داره میتونه عمل بکنه و دیگران از این نمیتونن تمیز این عمل نفسی واجب به خودش عمل بکنه الا ان له لا یجوز للغیر تحلیه فی دیگر ها نمیشوند تقریب کنید و کزا حالی که علم ها صدیل مشتهه فاسد او غیر دل امامی که فاسده یا مشتهه دی که امامی است من رو غیر اجتهادی یا دل متعارفی یا نمی کنم عادل باشه آدلم باشه امامی هم باشه اگه اینها رو شرایط نداشته باشه نمیشه. ولو از پروب اجتهادی تحصیل کرده باشه. فَإِنَّهُ لَا يَجُزْ عمل به بَهُمْ این یک مثال مثال دوم و که حکم شاره عدل حاکم حاکم شر به مجوب قبول خبر العدل المعلوم لهون یعنی خبری که برای عدل معلوم شده مِنَ الْحِس یعنی خودش دیده باشه دامن الْحَبْس حَبْس ندنه بگه قرآن و شواهد امثال این ها دارد مرمین زید به عمق دهکاره و دیگه باشه و محسوس باشه علاقه این سال این قطع موضوعی از مثال های قطع موضوعی نسبت به حکم غیر قاطع خیاد خاصیت سرکون و مهمترین خاصیت برای قطع موضوعی و این تفسیرات که داره میگه صغم منخواست سرکت عنوزی و تریخونه دلواقع خواست قط قط طریقی محض و قط موضوعی و اون تو قسم که داره یکی از خاصیت هاشی یکی از خاصیت های قط طریقی محض قیام الامارات شرعیه و بعض الوصول عملیه مقام هون فی مقامنا در مقام عمل یعنی اگر قط طریقی واشه علم و حرام علم ویشدانی پیدا کنیم باز حرمت ثابت. اگه امارات با این ام با میشه باز حرمت ثابت. بعد بیاد حرمت ثابت میشه. امارات و بعضی از اصول عملیه مثل استثاب با این مقام قط تاریخی مه میشه. چرا؟ دو خاتمی چه اتکاشیتیات متناسب. این بعضی از اصول امری گفته بعضی از اصول امری که چندی اتکاشیتیات مثل استثاب. استثاب چه اتکاشیتیات؟ داره استثاب جایی که علمه علم موضوعی محض علم طریقی محض میشه اصلا عملیه بودیه استصاب کاشه که استصاب کاشه کنید استصاب شاید عملی هم استصاب استصاب بالاتر از اصول عملیه است ولی خب به عدله نمیگه محضاره بیانه کاشفیت رو داره استصاب کاشفیت رو داره حالا استصاب اختلاف در این یاده ولی حالی ایشون اومده بعدی از عملیه از ازاره میگه اون اصل عملی که مثل امارات باشه استصاب بقیهی اینطور نیسته قبلیت ولی اونا نگه اونا همه شون جنبهی توصیفی یا لغوی داشته باه با مقام دیگه ولی اون الانش نیآورده امارات و قواعد و عنوانا منیو گفته حالا قواعد اصلا نگفته بعد میگونه ولی یکی گفته بعد ازتون مراد احتساب حالا مناقشاتش در حواشی و چرخا و همینجا با کلمات دیگه راه اونها نداره یعنی مصنف از این بعد از به خلاف معقول یعنی به خلاف واقعی که عرض میشه در حکم شرعی علاوه یک موضوع به این نهو تا به اون به دلیل داله کرد ولی قطع موضوع اینطور نیست یعنی در قطع طریقی مرز امارات و بعضی قواهه بعضی رسول عمدیه قائم مقام میشن اونهای که جواهد کاشفیت کدنن ولی در قطع موضوعی ای چی آیا امارات و بعضی رسول قائم مقام شمیانی میشن ایشون فرمودن تا دلیل اون حجم اون حجمی که قطع در اون موضوعیت داره دلیگه باید نگاه کنیم در بعضی از موارد پای مقام میشه در بعضی از موارد پای مقام نمیشه بله؟ باشه, باشه. <مسؤال> یعنی چی؟ یعنی شما باید علم وجدانی بهتا میکردی به اطالت زیت علم وجدانی نداری؟ بگه یعنی میگه آتله میشه علم موضوعی پای مقام داره تمام آثار برش مترفقه فرقی نداره تمام آثار مترفقه به خودش هم تسلیم کنه احتیاط کنه عقلیه احتیاط عقلیه <تصفح> نه نداره اون عقلیه خاطر عقلیه بودنش نگید به خلاف که عقل میشه علاوه شهر موضوعیه بعد پتی موضوعی اینطور نیشه آیا امارات پایم مقام میشن یا نمیشن؟ یه تابه دلیل خود اون حجم. حالا دلیلش دو صورت داره فه زهره من زالکت دلیل یعنی از خود دلیل خود او من دلیل خارج یا از یه دلیل خارجی مثل شم فقی مثل ارتکاز فقها مثل خیلی از شهرتها از دلیل خارج ما فهمید فه زهره من نفس دلیل او من دلیل خارج اعتبار و علاوه لل للموضوع قامت الامارات و بعض رسول مقامه اگر اون قطع موضوعی رو ما تشکیز دادیم که اون قطع موضوعی قطع موضوعی تاریخی در این موارد قامت الامارات و بعض رسول مقام. ولی به این زهرم نفس دلیل این موانده تشکیه این کشفی طریقه همون کشفی دید. مبارای تا تمام من شدیم داره خالیه داره به نمی که حاشفیت خودش موضوعیت نداره علم در لفظ اومده یعنی اخذ شده ولی این جنبه که حاشفیتش مدده نداره جنبه که تمام این اشکالاتی که تو زهن ها میاد چطور هم قد موضوعیت داره هم جنبه کاشفیت داره و این بحثایی که در اوسر در بهر الفوائد اومده گفته ما در این قد که جهت کاشفیتش میگیریم نه جهت موضوعیتش هم این همه اینها باختنیه همش بافتنیه به درد ما نمیخوره این حرفا واقعیت‌ها رو تون سه چهار تا جلسه گفتم اینها برمیگرده به شروط علمیه بعد تفسیر شروط علمیه با اون نظری بود که گفتم بعد این جزوه شما آماده بشه بدیم آقای بخونن اونو در مقابل ان می‌گند ما اونم یاد بگیرید حالا ارجونا ببینید نرفش برای شما بیشتر بود اونم به اتفاقا خیلی در مقام توضیح عبارات نیستن یعنی بگیم ما حتما هر این از حسین جهات کوششیا قسمت نظرو اینا رو ناینی در اصلا قبلنی حرفا نبود شما بیان بگیم یه قطعه از علم طب خمریه شیئن فهرام. اجا هم علایكم مثلا شور بشن سال هر حکمه اضافه کردن خمریتی که بعد بیایم بگیم شاید در اینجا اون جهت کاشفیت و لغاتی کرد اون جهت نمی موضوعی صفتیت شخصیت ما از ما کجا تشخیص بدیم بعد این همش این مثال که نیست ما میخوایم یه معیاری باشه برای تمام تخمون از اینا برگشتش به شروط علمی و شروط ظنیه تمام بحث مرتبط میشه به اون با حالا احدی نگفته هرچی نداره نگفتن که نگفتن نه ها بحث ها خامه ما بیاییم بگیم این جهت که عاشقیتش نظر بوده و بعد محقق نایین اومده گفته شاره در تمام موارد این زنون 70% رو مقام علمیت به اینها داده بنابراین امارات از 70% ارتقا پیدا کردن به 70% این ها همهش گفتنش خیلی خوبه بلانسی 40 سال منافع منافش آید طلب شده برد نیست ولی های واقعی قرار بیاد بگی اینها رو من از 70 درصد ترقی دادم به 100 درصد و اینها با علم ميزانش فرقی ندن اینطوری نیست اینا ظاهر قضیه اینه ولی در لُبش اگر قد رو موضوعی بدونیم یعنی جزء شروطی به حساب بشه به خاطر کی در موضوع بحثه یه قاعده ای داخل فلسفه عربی میذاره واسه چرا ما به شروط مسلط می یعنی آقا اگه قرعه موضوعی چرا که به شرط داره یه قاعده معتقدیم و بعداً اثبات میشه کل شرط موضوع و کل موضوع این شرط هر موضوعی داره هر شرطی یا موضوع حکمه بنابراین وقتی این قاعده تمام باشه میگن قطع موضوعی یعنی قطعی که شرطه پس مرتبط میشه به شروط شروط علمیه و شروط علمیه رو ما چطور تفسیر کنیم شروط علمیه رو من چطوری تفسیر کنم یکی از مثال اینه که علم به اباهه ساتر در نماز و در تباه باید انسان علم پیدا کنه به اینکه ساترش مباهه در نماز و در تباه خب اگر کسی علم به اباهه ساتر داشت و در اصنا فهمیدین قصفیه باطل یا باطل نیست خب طبق نظر مشروع میگن باطل ولی طبق این نظریه باطل نیست چون علم به عباه ساتر یک علم ابتدایی و قدوسیه شرطش هم اولش شرطیت داره. یه بقاعا شرطیت نداره عباه ساتر قبل از ورود در نماز شرطیت داره نه در حین نماز بقاعا شرطیت نداره حالا بگه این آقای خوی نگفته نایی نگفته نگفته باشم. چی میگی؟ معیاری میخواد لسان دلیلی؟ نه معیاری میخواد دهیر از لسان دلیلیه معیاری میخواد معیارش چیه؟ معیارش باز داخل فرانتش بنویسید. یادتون نره من این آره همهشو در اون زبر صابق که اختم نوشتن که که گشتش به شروط اتصاف و شروط ترتب شروط اتصاف و شروط ترتب باید یه مثال اینجا بگم وقت گرفته میشه برای اینکه واضح بشه بعضی از شروط غیر اختیاری بعضی از شروط اختیاریه مثلا در نماز من علم پیدا کردم که وقت داخل شد وارد نماز شدم فهمیدم که وقت داخل نشد و نمازم قبل از وقت شد خب نماز باطل. این وقت جز شروطیه که بقاان معتبره یا هیز یا نفاس یا مرض این از شروط غیر اختیاری هم شروط غیر اختیاری یه مثال یه نوع مثال دارم میزنم به صورت قاعده کلی شروط غیر اختیاری هر کجا که ببینی هم حدوثا شد هم بباید اگر زن به که هیز نیست وارد روزه شد اصناع روز فهمید هیزه روزش بازه اگر با علم به عدم حیز وارد نماز شد در اصناه نماز فهمید حیزه نمازش بارد چرا؟ چون بقاان شرط معیار کلیشی شروط غیر اختیاری مطلبا در مواردی که از جز شروط علمی باشه حدوثا و بقاان شرطنی به نماید ادامه پیدا کنه اگر علم من در اصناه برخلاف شد کشف خلافش بشه، اون به هم می قاعده کلیه یعنی که بخواد اینا رو به دست دیاره 10 سال باید زحمت بکش. حالا ما همینطوری داریم میگییم آقاین نگن اینا خارج از مطلب اینا ربطی به کتاب نداره. کتاب وسایل رو به روز باید بگی و ادلا نیاز به سی سال در خارج پیدا میکنه. من باید لب به قطع موضوع رو بفهمم. من خدای خودم الان در خیلی مواعثکن، جزم صدرایی نرسیدن چطور از یه میگن اینا که واضحه کجاش واضحه ما قصه موضوعی اینطور نفهمیدیم مثلا تا حالی موضوعی چه ارتباطی به شروط علمیه داره شما برید دنیا رو بگردید اگه کسی بگه من جایزی میده با اینکه واقعیت همینه قصه موضوعی مرتبط میشه به شروط علمیه بعد معیار میخواد برای تشخیصش آیا این حدوثاً بقید شرط باشه یا حدوسن و بباعه معیارش مرتبط به به بین شرط اتصاف و شرط قرطبه این تمام مثال کلی براش دادم در تمام شروط خیلی اختیاری شما هزار تا مثال براش میدادم هر کجا یک شرطی جز شروط علمیه باشه بیلی یه هم باشه اون از مواردی که حدوثن و بقاان شد بنابراین کشف خلاف در اونها معنا پیدا میکنه از موارد قطع موضوعی طریقی میشه دیگه از این واضحتن نمیشه داره این تعمل کنم برای خودتون مفیده بعد یه روایتی در رابطه با هست اصبو تجارت اون روایت ما فقط برای خودکار نگی علمن همین و ببین اونهایی که برای خدا میخوان درس بخونن برای خدا میخوان بییشتر کنن به مکتب ما میخوان قسمت کنن هم باستون بالا این قلت بگردن خودمون درس نمی دونم چی چی چی بگه چی چی بگه و اس قران حلس های ما بخوان تنظیم کنن اینطور نباید باشیم شما برای خدا باید بدونه که روی بال ملائکه نشستی و برای شما عبادت فرض میشه و این مثل دار شفاه ها میمونه که زنجیر رو میخوان پاره کنن با این نیتیه دشینی اون چیزی که قسمت انسان باشه افاظه میشه به ذهن من میرسه به شما میگم به ذهن دیگری میرسه به شما میگه ولی اگر ما دنبال منیت ها باشیم دنبال این باشیم که چیزی ده... دا ارمدار من باشه اینها ها علم حاصل نمیشه طلبگی هزار و یک شرط داره اگر هزار تاشه دعایت کنه این یه دونه بمونه پایده نداره از امام صادق علیه السلام در رابطه با تجارت پرسیدن که هاسته چکار کنه یکی از کتارش بگیره امام فرمود که مغازه رو باز کنه بساتش رو کنه دنبال که لامپ بزنن از اشياء... رنگ رنگش عوض بشه تبلیغات بکنم چی روشن کنم چیکار کنم اینها در درامت ها رو حرام کرده مغازه رو باز بشین و در فقه امامیه داره کسی مخارج روز اگه فروخت دیگه بعد از اون سود نگیره یعنی به همون قیمتی که خریده بفروشه ولی الان بازار ما رو بهتی نگاه کن بازار که بدتر از بازار وخاقی ما اسم امونیه که مخالف محابیتیم خودمون بدتر از اونیم قیمت ها ساعتیم بالا دولت رو مسترسل میکنن ارگان ها رو مسترسل میکنن بدتان میکنن نه خیانت نیست به خاطر اینکه نیت خدا نیست و الا تاجر باشه نیتش خدا باشه نباید اینطوری بازار سیاه درست کنیم ما هم اینطوریم خود هم مثل بازاری ها. دنبال سر و صدایی ها نباشیم یه اگر برای خداست بشی بعد اگر بنا باشه علمی به شما برسه میرسه اگر بنا باشه نرسه که نمیرسه دیگه یعنی جزه بهترین جوزی هاست که در دعاها انسان میخونه خدا وزق، حلال، واسع تییب به من بده یعنی یک علمی که تییب باشه علمی که دردسر سرسال نباشه اینا رو دیگه آقاین خودش متذکرن آولی وزیفی من اینه که بگم ما رساید رو باید به روز بخونیم به الا محتاج مرمای خویی میشیم و ایشون میفت ما ازش کنون رو یاد بگیریم وقتی نداریم اینا رو با تعمل ان انشانده علم بتون سرازی شد خبران کرد که دوشی بگیریم بعد دیگه مستقلی میشه از خیلی درسا دیگه درسای درس خارجینا یعنی حاصل میشه. بر از که در تفسیر قطع موضوعی یک نکته ای رو گفتم اون نکته رو اهمیت بدید روش تعمل بونید مرتبه به شروط علمی است. اگر کسی بگی اینطور نیست از روی جهل یعنی جهل به مطلب. و الا موضوعی همون شما اگه 20 سال هم بگید دنبالش آخرش باید به همین نقطه برسید دیگه پس الان که داریم میگیم نگید سخت و این ظهرم من دلیل اعتبار و قطع فرموزوم من حیث و که اونها تن هم خواست هم اگر اعتبار اون دلیل گفتی این قطع موضوعی صفتیه و خدا میتونه اگه من که قطع موضوعی صفتیه یعنی در صفت نه اون یکی هم صفتیه قطع اگه بیره ای سفاتیان هم داریم. چیزی چی من جواب بدم. اونها رو بعداً گفتن که نه اینطوری لحاظ میشه. چرا می‌بری رو لحاظ و رو, رو واقعیت، ها؟ ما بیایم دیگه کار تو توش رو لحاظ میکنه. شاریه وقت اینجوری لحاظ می‌کنه. واقعاً اونطوری لحاظ میکنه؟ چرا رو لحاظ میبرد اون واقعیت ها ببرد قطع موضوعی صحی یعنی همون شرط علمی که حدوثاً شرط. قبل از نماز باید علم داشته باشه که لباس شما ساطر شما مباه در اصناع نماز فهمیلی قسبیه نماز ادامه بده چه شالی داره اگه کسی گوه اشتباهه بگو تفت مبنای خودم اشکالی حلبه رسائله میخونه تا مبنا بیده که ما از ان نشوره اعتبر تبراس فتحال قسم، آلو هوزال وشیه عدد رکات سناویه و سلازیه و من منافعویه و سلاط مسافر، و این غیرهو که زن به طرفین. میگن مثلاً طرفی کن زن به هدیت طرفین پیدا کردی، دنبالش برهم. او اصالت ادم زاید بینه و چهار شکر کردیم اصالت ادم بنا رو بر بزار اصالت ادم زاید که این بر امامی هم درست نیست به اینکه مکتب امامیه بنایه بر اکثره نه اصالت ادم زاید لا یقوم و مقامه زن به عهد طرفی یا اصالت ادم زاید که عام قائلا لا یقوم و مقامه ده. باید شما حافظ دکات باشید یک لحظه این علم مذبین بره و با ترقی به جای نرسی نماز از زن به احد طرفین حجیت نداره اصالت عدم زاهدی که عامه میگن حجیت نداره لا مقام مقامهو الا به دلیل پاسد خارجی غیر عدله حجیت مطلق زن به سلا و اصالت عدم نفسد مگنی که دلیل خارجی غیر از عدله حجیت مطلق زنون یعنی اگر ما دلیل یک با میکردیم من اینکه هر زنی در نماز و در افعال نماز و در رکعات حجید دارد. اگر کسی کنیست استفاد کنه، چون دو تا دو قسمید یکی زن به افعال نمازه یکی زن به رکعات در نماز. زن به رکعات حجید نداره ولی زن به افعال حجید داره ایشون میگه غیر از عدله مطلق عدله حجید زنون در باب نماز غیر از اینها یه دل چون اینها اعتبارش عامه و جز زنون آمه حساب میشه و زنون عامه دلیل اعتبار خاصی از شاره نبود چون زنی بنابر مستقی شیخ انساری حتیت داره که زن خاص باشه نه زن عامه. نه مطلق زن. میزای قومی قائل به حجیت مطلق زن هر زنی حتیت داره چون ایشون مستقی شبیه به انتدار میگه راه بسته هست نیست تنها که تمام زنون حدیت داشته باشید در زمان قیدن ولی شیخ انساری قائل به این رو ما قبول نداریم حدیت مستقر زنون رو ثابت نمیشه تنها زنی حدیت میشه که دلیل خاصی در حدیتش قام شده باشه مثل زن حاصل از خبر واحد از تواتر از نبینام شهرت از اجماع هرچی یه زن خاصی باشه دان خاص یعنی موقع از دلیل خاصی برای احواب شه شیخ انصاری طرفدار حجیت ذن خاصه و نافی حجیت مطلق جنونه لذا گفته باید دلیل خاص خارجی خارقی باشه بر این که این ادله در این موارد هم ها حجیت داره و اگه نباشه نماز باطل میشه شما اگه هست از دست بدید و تروی کنیم به یکی از این دو تا نرسین نماز باطل میشه شرط حاضر رو ما, ما, شرد. شرد یعنی ما تا بیش می شرط میانه شرط که هم نعید مشروط هم نیستی ما که ما دو شرط میدونیم نمو به شرط شد یه رق شرطی شرطی برای شرط یه رق توی اصل شرط یعنی اگر که این تفصیل درست این تفصیل درست ولی بحث ما ما ما یا بقای یا این شک حتی به تبدیل علم شه اگر بگیم شکمون می اینجا میگیم که مشکوک هست اما هیچ بعید نیست که, که یعنی شما که ملاحظه می‌کنید یا متقابل می ما اینطوریه هیچ نیست که ما که وقتی ما شک حادثه شک بر رو اصل بود. بگیم همه مشروط هم, هم دو, حتی... دو تا مطلبه شوانه... شو بگیم دو تا مطلبه بگیم دو تا مطلبه من بگم ببین خودش نیاز به افقاد داره که شما شرط حاضر و با شرط و قدر الان بس من دو تا مطلب بگم یکی که اولا مطلبه ولی که شرط پنج تا اصطلاح داره فرمایشیشون مکمی بر اصطلاح فرسفیشه تو همونو دارم میگم ثانیت اگه شک ما در حدوث باشه شک در بقا باشه این یه مفتر جای خودش ما اصلا محل به بحثمون در این بحث ما در نحوه جعل شرط آیا این شرط حدوسی یا بقایی شک شرط در بقا حدوث و بقا ندن در این کیفیتش آیا از سنخ حدوسی یا از سنخ بقایی؟ ماهیتش از خود رو تشکیز بدیم گفتیم برمیگرده به شروع اتصاف و شروع تو وقتیو با, با فرض شما نداره. شرط فاد که به نفع کشف در یعنی چیه؟ یعنی یعنی چیه؟ قواعد شرط از اول ندونه اینکه الان. تخمیدی از اول ندونه مذهبی. نه، نمی‌خواد چی؟ خب میگم میشه، ولی ما می‌خوایم می می ما تو کلمه مشخص کنیم. یعنی نمی‌خواد یه دلیلی میگه نیا نمی‌خواد. آخه دکتر واش جزء قسم دومش میشه. ببین یک شرط علم به شرط داریم. یکی شرط معلوم فرمای شما در این قسمت گ به شرط مع. اماما باشه باشین وگرد شرط باید معلوم باشه که نباشه عادده می خواهی. نه در در این موارد فقط خصوص علم شما همین که قبل از نماز علم پیدا کنید به اباهه ساته در اسنای نماز بفهمید دستی نماز درسته این نه. یا آقاین شوخی نگیرن. شما فردا یا باید بگی این نماز عاده کنه یا بگی احیاط کن یا باید بامراجه کنید. بنابراین بدن که هر سه قطع بشه الان این پیدا کن دیگه علم ساتر و اباهه ساتر قبل از نماز کافیه در اسنای نماز بعد از نماز بعد از وقت کسی بفهم ساترش قصدی بوده نمازش درسته میبین مبناست اینا رو خدشه نکنید و فرمایشات شما متینه منطقه در یه زاویه دیگه بحث ما در یه جهت دیگر سلام منافاتی بین این دوتا نیست اگه کسی شک بکنوی در همه اونها که فرمودی الان شک بکنیم در شرط حدوسی بعد از پیش کشی باشه باید ادهاد بخواد اون خب میاد در قسمت احتیاط خود مصنف همه اونارو رو بحثی که انجام می ولی این مسئله که ما گفتیم غیر از اونه این مسئله غیر از اون ما میخوام خوام مبنا پیدا کنیم یک طلبه ای اول رسائل مبنا پیدا میکنه به اینکه آیا یا ابای شرط مطلبه یا شرط حدوسی. همین که دارن میگن شرط مطلبه شما باید قبلش علم پیدا کنه به اباه بسطه نماز اگه علم پیدا کردی مباه نبوده نمازت رو باید باطل کنی دوباره بخونی بعد از نماز باید عاده کنی بعد از وقتم قضاش باید تجا بیاد ولی اگر تشکیز دادی به علم به اباه مدد نظره و این حدوثیه بنابراین در اسنای نمازم به فهمید بس که اشکالی نمید این مبناست مبانی آقای خطش نکنه سامین از نظر ظاهری هم خوب بعیده شما اهل فضلی توی اهل تحقیق هم که در یه این مثلا اشکالی ما رو به هم بریزه این بعیده از نظر عادت بعیده دوره قبل که اتفاق نیفتا یا یه چیزی دیگه مبنای ما ما به هم بریزه ما برگردیم چیز دیگه بدیم چیزی نبوده دلیل بنابراین اون چیزی که ما داریم میدیم اینها رو آقای قبول کنن به صورت اصل موضوعی نه اینکه مبنای خودتون باشه بید انشاءالله شاءالله تحقیق کنید یا اینه قبول کنید یا یه مبنای دیگه پیدا کنید نهایت چیزی که ما بهش ایشون همین که داریم میگیم یعنی در رابطه با ساختار من اعتقاد همین. قبل از, علم هم هم باید علم قبل از نماز ام به کافی در اسنای نماز کسی به میتونی، کسی در نماز بخونی درستش نه مکانش هم میتونه، مکان کسی بیام قبلش باید این پیدا کنی که، بعداً در اسنای نماز بیام بگن اینجا قصدی بوده، باطله نه. هیچکم از نمازش ماشکش نه قبل از نماز شد. نه در اسنای نماز. نه انشالله مهمه. آقا که میخوان به مبانی خودشون بدهن، اینها مختصرم اقدامش در اطرافش نکنید که سوال های زیادی درست بشه و به این علوم و قنون مرتبط به همه سلوار میاد مطالبی طوری باشی وقتی باشی ما این که میخوان بگیم بگیم وقت کم نیاریم چون مطرف زیاده هم مست باید بخون هم مطرف باید بگیم بعد اینا ها مسترزیم که آقایی مقدار فرصت بدن به ما فرصتی باشه من بتونم حرف بزنم عادي <سؤال> ما وقتی این عوامل دست نخورده شهر جهنم مرکب بود عمر اجدادی بود من همه رو بحث چون تو بصره مواظب رو می‌بینیم که جهنم مرکب رو ساخت من ولی همین حالا